خیال روی تو چون بگذرت به گلشن چشم دل از پی نظرایت به سوی روزن چشم سزای تکیه گهت منظری نمی بینم منم ز آلم و این گوشه معین چش. بیا که لعل و گوهر در نصار مقدم تو ز گنج خانه دل میکشم به روزن چشم سهر سرش که روانم سر خرابی داشت گرم نخونه جگر میگرف دامن چشم نخوست روز که دیدم روخ تو دل میگفت اگر رسد خللی خون من به گردن چشم به بوی مجده وصل تو تا سهر شب دوش به راه باد نهادم چراغ روشن چشم به مردمی که دل درد وند حافظ را مزن به نا و که دل دوز مردم افکنه چهر